اللهم و بركات و بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد و الصناء لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نؤمن به و عليه و بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ما بغية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارض کتوعا و تمتعه فیها طویلا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان هدیه بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج اوسیکم عباد الله و نفسی به الله تقویی که در خطبه های جمعه و در موارد دیگر به آن توصیه می شود و تاکید میگردد تقوایی است که خداوند متعال بپسندد و بپذیرد و اگر کسی به نظر خودش متقی است در پاک بودن خودش و از پاک بودن و تقوای خودش صحبت میکنه خودش را میستاید به عنوان متقی این تقوای ادعای مورد پسند حق تعالی نیست چون خداوند از همه چیز ما آگاه کاملا نادرستی ادعاهایی از این قبیل را خداوند میداند در قرآن فرمود هو اعلم بكم اذ انشئکم من الارض و اذانتم اجنتم فی بطون امهاتکم مردم خداوند نسبت به شما از همه آگاهتره از اون هنگام که شما رو از زمین خلق کرد و در آن موقع که به صورت جنین در بدن مادر بودید خدا از همه چیز شما آگاهه بعد از این خداوند می فلا تزکوا انفسکم هو اعلم و به بمن تقا پس خودتون رو ستایش نکنید از پاک بودن خودتون سخن نگید چرا که خداوند عالم است که چه کسی پرهیزگار است بنابراین باید تقوایی برای خود دست و پا کنیم که مورد پسند و پذیرش حق تعالی باشد فروردگاه را ما را به تقویی که مورد پسند و پذیرش خودت هست بزین بفرما در تفسیر سوره مبارکه ممتحنه به آیه پنجم از سوره ممتحنه رسیدیم حضرت ابراهیم عليه در این جمله ای که امروز مورد بحث ماست به خداوند عرض میکنند ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا. پروردگارا ما را برای کسانی که کافر شدن فتنه قرار مده این کلام را حضرت ابراهیم در زمانی فرمودن که ایشون و همراهانشون از کفاری که به اون کفار با اینها خویشی هم داشتن براعت و بیزاری جسته بودن و با تندی و غذب حضرت ابراهیم و همراهانشون از اونها فاصله گرفته بودند. حالا که از اونا فاصله گرفتن احتمال خطر میرفت که یک فتنه ای در اینجا شکل بگیره بر همین اساس حضرت ابراهیم و همراهانشون از خداوند خواستن که ما را از فتنه کافران هفس کن و ما را فتنه برای کافران قرار نده حالا سوال اینه منظور از این فتنه چیست که حضرت ابراهیم از خدا میخواهد که در این فتنه قرار نگیره چون در قرآن کریم فتنه به معانی مختلفی به کار رفته و استعمال شده یک فتنه به معنای آزمایش و امتحان مثل این آیه کریمه در سوره مبارکه انکبود خداوند فرمود احسبن ناس ان یترکو ان یقولو آمن نا و هم لا یفتنون بعد فکر میکنن همینقدر که ادعای ایمان کردن دیگه ما میپذیریم فکر نمیکنن که اینها رو امتحان میکنیم تا از امتحان معلوم بشه که چه کسی ادعای ایمان داره و چه کسی مؤمن است. بعد خداوند میفرماد ولقد فتن للذین من قبله هم. ما وقبلیا هم امتحان کریم این اختصاص به شما نداره به هر حال غرض این است که فلا يعلمن الله الذين و ولا يعلمن الكاذبين باید در عرصه ظاهر و خارج مشخص بشه چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ میگه دو فتنه به معنای آتش و عذاب هم به کار رفته در قرآن کریم همچون این آیه کریمه در سوره ذاریات هنگامی که دروغ پردازان می‌پرسن روز قیامت چه زمانی است از سر انکار و قبول نداشتن چنین حرفی را مطرح کردند قرآن می‌فهمد یا وهم علی النار یفتنون قیامت اون روزی است که اونها رو در آتش می‌سوزانند و در آن روز به این دروغ پردازان گفته میشه زوقو فتنتکم حادل لدی کنتم بهی تستعجلون بچشید عذابتون رو آتشتون رو این همون آتش و است که از روی ریشخند برای آمدنش شتاب داشتید سوم فتنه به معنای شرک پرستی و حاکمیت کفار هم در قرآن آمده مثل این آیه کریمه و قاتلوهم هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو لله مؤمنان مسلمون ها با کفار و مشرکین بجنگید تا فتنه ای مثل شرک و و حاکمیت کفار بر جای نماند و دین فقط برای خدا باشد ان الله بقیه استعمالات و مواردی که کلمه فتنه اونها به کار رفته در خطبه آینده عرض می تا ببینیم مراد حضرت ابراهیم از این دعا که به خدا عرض کرد بلالا تجعلنا فتنتا للدین کفرو چه می‌تواند باشد؟ اللهم منصول الاسلام و اهله وخذل الکفر و اهله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا واحدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على <تصفيق> محمد وعلى محمد وعجل فرج اللهم <أهلك> صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج اعوذ بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده و نسلاو و بالله من شرور انفسنا و من سجوات اعمالنا. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و و, نسلم و, س... و, نسلم و على خاتم سیدنا و خاتم الأنبياء و سيدنا و محمد و عاله الطاهرين. اللهم صل على مولانا علي أمير المؤمنين ورسى رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلّى على الحسن بن الحسين شباب اهل الجنة اجمعين وصلّى على عامة المسلمين علي بن الحسين زيد العبدين و محمد ابن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق و موسى جعفر الكاظم و علي ابن موسى المرتضى و محمد ابن علي الجواد و علي محمد الهادي و الحسن علي الزكي العسكري والفضل بن الحسن القائم المهدي صلوات الله و سلامه عليهم، اجمع نتقرب إلى الله بحبهم و البراءة من اعدائهم. السلام عليك يا فاطمة المعسومه، يا بنت موسى بن جعفر، و رحمه الله و بركاته. اوصيكم عباد الله و نفسی به تقوى الله. در قرآن کریم برای اهل تقوى آثار و آلاء میذکشند. از جمله در سوره مبارکه آل امران آیه صد فرمود والذین اذا فعلو فاحشتا او ظلمو انفسهم زکرالله متقین کسانی هستن وقتی یک کاری میکنن یک گناهی که آسیبش به دیگران میرسه او ظلمو انفسهم یا گناهی که تنها آسیبش به خود اونها میرسه به هر حال وقتی گناهی رو متقی مرتکب میشه ذکر الله فوری یاد خدا میفته و بعد فرمود که فستغف فستغفرو لذنوبهم اینا وقتی یاد خدا میفتن به سرعت استغفار میکنن از گناهی که مرتکب شدن و من یغفرو الله و کیست جز خدا که گناهان رو ببخشد بعد این جمله رو میفرمود ولم یسر رو ما فعلو و هم یعلمون اصرار نمیکنن در اون گناهی که مرتکب شدن بنابراین انسان متقی کسی است که اگر یه وقتی مرتکب خطا و گناهی شد سه کار رو بلافاصله انجام میده یاد خدا میفته استغفار میکنه و اصرار بر اون گناه نخواهد داشت این متقی هست پروردگار را به حق محمد و آل محمد تقوا را بر همه امور ما حاکم بفرما در خطبه دوم چند مناسبت و دو تحلیل را تقدیم محضرتون میکنم امروز جمعه هیفته شهریور سال روز کشتار بیرحمانی جمعی از مردم عزیز کشورمون توسط رژیم ستمشاهی در میدان جاله تهران در سال 1357 که به جمعه خونین معروف شد و اتفاقا امسال هم جمعه با هیفته شهریور مثل اون سال مقارن شده پیفته شهریور در واقع از ایام الله و روزهای مندگار تاریخ کشور عزیزمون ایران هست این روز روز سربلندی و ولایت مداری مردم ایران شد چون ادهی ای در این روز با بهترین مرگ یعنی شهادت نزد پروردگار رفتن ولی روسیاهی برای رژیم شاه باقیمون که به روی مردم حق طلب و بیدفاع کشور خودش آتش می گشود سرانجام روسفیدان ماندند و روسیه با خفت و خاری رفتند همچنین افته شهریور روز جهانی مبارزه با بیسوادی است از مردم عزیزمان انتظار داریم برای ریشه کردن بیسوادی از کشورمان در کلاس‌های نهزت شرکت کنن سازمان نهزت هم تلاش خودش رو در این مورد بیشتر کن از همه دستندرکاران به خصوص آموزش بربرش و سازمان نهزت سواد آموزی تشکر میکنیم خداوند و انشاءالله توفیقشون بده و همچنین مردم عزیز این بلا رو از جامعه برندازن روز شنبه 18 شهری و 18 همه ماهز الهج روز اید سعید قدیر هست تبریک میگیم این روز رو و در همین خطبه تحلیلی درباره باره اید سعید قدیر تقدیر محضتون خواهد شد روز یک شنبه نوزه شهریور سار روز وفات مرحوم آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران هست حضرت امام قدس سر روح لقب ابوذر زمان را به این مجاهد نستوه دادن رحمت الله علیه روز دوشنبه 20 شهریور متابق با بیست زلحش در تقویم به عنوان روز ولادت امام موسی بن جعفر علیه السلام ثبت شده سزاواره که مردم عزیز کشورمون به خاطر جایگاهی که امام هفتم علیه السلام در ایران دارن و سه حرم مهم در ایران مربوط به فرزندان امام هفتم علیه السلام است یعنی مشهد که مفتخر به حرم رضوی قوم که مفتخر به حرم حضرت معصومه سلام الله علیه و شیراز که مفتخر به حرم حضرت احمد ابن موسا شاه چراغ هست و جای جای این کشور پهناور که مزین به مقابر امام زادگان از نسل حضرت باب الهوائج بن جعفر علیه السلام هست این روز را گرامی می داریم و انشالله مردم ضمن شرکت در مجالس جشن سرور برای اون حضرت به فضائل و مناقب اون حضرت بیندیشن و سخنرانان و شعران و مددهان از فضائل اون بزرگوار بکن روز دوشنبه همچنین بیست شهری در مناسبت دیگرش سالگرد شهادت شهید محراب مرحوم آیت الله مدنی به دست یکی از منافقان شقیه هست که اون مجتهد مجاهد و معلم اخلاق را از ما گرفت. مردم عزیز ما بدونن نهال انقلاب که امروز به فضل الهی تنومند گشته به جان جانفشانی و خون پاک این شهیدانه قدر اون رو بدانیم و نگذاریم به دست نا بیفتد که این وسیعت امام شهیدان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اللهم صلی اللهم محمد و فرج اللهم یون فرج اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج دو تحلیل رو تقدیم محضر میکنم ابتدا مربوط به عید سعید قدیر هست اولین چیزی که روز قدیر در سال دهم هجرت هنگام بازگشت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از حجت الودا اتفاق افتاد گویای اون بود که مسئله ولایت و امامت یک مسئله الهی و است و عقل بشر از تشخیص آن و دست بشر از تعیین آن کوتاهه. به همین خاطر حتی اشرف انبیاء الهی و خاتم مرسلین هم سهمی در تعیین خلیفه الهی نداشتن ایشان فقط معمور به معرفی و ابلاغ خلیفه الهی بودن در قرآن از این مسئله به عنوان ما اونزل الهی که من ربک یاد شده یعنی امر ولایت یا امر الهی و آسمانی است این یک دومین مطلبی که در قدیر خم به سراحت به اون پرداخته شد نه تنها خلافت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود بلکه تعیین خلفای الهی بعد از نبی اکرم تا روز قیامت در این خطبه چند جا تصریح شده از جمله در فرازی از خطبه غدیر چنین آمده پیامبر فرمودند فامرت ان اخذ البيعه منکم وصفقت لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي امير المؤمنين والاوصياء من بعده الذين هم مني ومن یعنی من معمور هستم که از شما پیمان بگیرم که دست در دست من نهید در پذیرش آنچه که از سوی خداوند عزوجل در درباره علی امیر و المؤمنین و اوسیاء بعد از او آورده همان اوسیاءی که از نسل من و علی هستند بعد فرمود امامتون فیه قائمه خاتم هالمهدی الى یوم ال... اللهم صلی علی محمد و علی محمد عجب الى یوم الله الذی یقدر و یقضی فرمود این امامت در میان اونها خایدار است و آخرین آنها مهدی آل محمد الله تعالی فرجه و است با وجود سراحت در قرآن کریم و کلام پیامبر در خطبه غدیر خم درباره الهی بودن و ارشی بودن مسئله خلافت و امامت و وصایت بعد از نبی اکرم متاسفانه عده‌ای بر اساس اغراض سیاسی و عده‌ای هم به خاطر جهالت راه دیگری رو طی کردن و مسئله خلافت و امامت را به گونه‌ای دیگر تفسیر کردن اون رو به یک صحنه رقابت بین طوائف تبدیل کردن به گونه‌ای که هر کس با هر ای که بتونه نظر مردم رو به سوی خودش جلب کنه و آراء بیشتری رو به دست بیاره او خلیفه جانشین پیامبر و حاکم بر مسلمین هست و همین نگاه انحرافی از اون زمان به بعد مصیبت‌های های زیادی رو برای مسلمانان بلکه بر کل جهان به بار آورد حالا وظیفه ما چیست؟ ای که به عهده ماست یک، باید معارف قدیر رو اهداف قدیر رو به خوبی بشناسیم تا ما بادام ما دوچار انحراف و التقاط بشیم دو معارف قدیر رو که در منابع اصیل مثل موسوعه القدیر نوشته مرحوم اللامه امینی رضوان الله تعالی علیه و به خصوص خود خطبه حضرت پیامبر اکرم که در روز قدیر فرمودن این خطبه رو بفهمیم و برای دیگران بازگو کنیم امام هشتم علیه السلام در یه جمله نورانی فرمودن لو الناس محاسن کلامنا لتبعون مردم اگه زیبایی های کلام ما رو متوجه بشن متابعت میکنن پس بیام خود خطبه قدیر رو با همون زیباییش برای مردم تشریح کنیم برای نمونه بنده فرازی رو از این خطبه تقدیم محضر میکنم رسول اکرم در روز عید قدیر در روز هیچده همه در باره امر به معروف و نحی از منکر صحبت کردن ببینید حالا چه چجوری امر به معروف رو تشریح فرمودن بعد از این که در باب امر به معروف صحبت کردن اینجوری فرمودن و ان رعس الامر بالمعروف ان تنته الا قولی مردم برترین بخش امر معروف اینه که به گفته من در باره امامت و ولایت علی و فرزندان او برسید و تبلغوه من لم يحذر سخن من رو به دیگران که حالا نیستند برسانید و و به قبولی انی غائبان را نسبت به پذیرش فرمان من توصیه کنید و تنهوه و ان مخالفته و او رو از مخالفت با من نهی از منکر کنید پس ملاحظه فرمودید تبلیغ برای ولایت امیر المؤمنین در رأس امر به معروف و نهی از منکر است ولایت امیرالمؤمنین است و منکر انکار این ولایت است ما موظفیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم با این دیدگاه این دو سومین وظیفه ما ماها که خود رو طرفدار ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدونیم وظیفمون این است که معارف اهل بیت به خصوص در امر ولایت رو با همون ادب قرآنی با همون ادب اهل بیت علیهم السلام به گوش دیگران برسانیم از هرگونه گونه اهانت بدگویی به دیگران و مقدساتشون پرهیز کنیم چون اولا سیره اهل بیت در انتقال معارف بدگویی نبوده و نیست دو لحن بد و سخن بد نتیجه عکس خواهد داد این سومین وظیفه چهارم این ما در این زمان این است که در بیان حقائق و معارف اهل بیت نباید هیچ گونه منافاتی با حفظ وحدت و انسجام جامعه و احترام به حقوق دیگران داشته باشد. مطلب تحلیلی کوتاه دوم مربوط به کشتار وحشیانی مسلمانان میانمار هست مسلمانان تحت ستم میانمار یکی از بیدفاع ملت‌ها در این زمانه. این مسلمان ها که در محرومیت و ظلم به سر میبرن. چون اکثر بودایه های میانمار تحت تاثیر تبلیغات و تحریکات غربی ها به خصوص اسرائیلی قرار گرفتند و همسو با داعشی های خبیص و شرور و دستپرورده دست وهابیون بدترین ظلم ها رو در حق مسلمانان مزدوم میانمار روا می دارن. مسلمانان روهینگیا بزرگترین قوم بدون تابعیت در جهانن یعنی هیچ کشوری تابعیت اینها را قبول نکرده به هر حال یکی از علل این کشتار وحشیانه ای است که در جهان اسلام ایجاد شده و کفار به خصوص بیشتر بیشترین سود رو از اون میبرن هم سلاحاشون رو میفروشن و از اون مهمتر اهداف پلید خودشون رو اجرا میکنن و با این اوصاف بر مسلمانان جهان است که صرف نظر از بعضی اختلافات و مسائل سیاسی در یک جبهه واحد علیه دولت ظالم و کافر میانمار قیام رو اقدام کنن و هر کسی بتونه برای مسلمانها و انسانهای تحت ستم کاری بکند و کتاهین کنه در پیشگاه خداوند متعال مسئول و معاخذ هست به همین مناسبت پس از اقامه نماز جمعه راه به مایی در محکومیت این حرکت جنایتکارانه وجود داره که انشالله شرکت خواهیم کرد اللهم مغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات پروردگار را ایدی ما را در این عید سعید قدیر فرج امام زمان قرار بده ایدی ما رو پیروزی مسلمان ها و نجات اونها از شر کفار و مرتجعین قرار بده روح متحر امام ارواح متحر شهیدان مراجع مازین امام جمعه فقید با اولیاءت محشور بفرما مریزان اسلام جانبازان عزیز شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمتت رو بر ما نازل من و قدردان نعمتهایت قرار بده سایه رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان محافظت بفرما پروردگار را رهبر عزیزمون مسئولان در انجام نیات و آرزوهایی که برای این نظام و انقلاب و کشور دنیا دارن اونها رو با آرزوهاشون و فوق رقبتشون برسان حوائج این جمع مؤمنین و مؤمنات و برادران و خاهران نوازگذار رو به احسن وجد حوائجشن براورده بگردان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر انحر این هو الابتر صدق الله العلی العظیم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته